سلام بر همه همراهان همیشگی کانال هزار افسان جایی که داستان ها و افسانه ها که های کهان جان دوباره می گیرند امروز با قسمت ششم افسانه زیبا و جذاب ملک جمشید همراه ما باشید در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که شاهزاده ملک جمشید برای پیدا کردن ماه عالمگیر راهی کوه سرندیب شد و برای این کار همراه اسبش سوار کشتی تاجرها شد و وسط راه هم دیو بدسیرتی رو به شکل نهنگی دید و که سر راه اونو گرفته بود اما با یاد و نام خدا و توکل به اون بر دیو پیروز شد و همراه تاجرها به شهر سرندی رسید اونها اونجا اتاقی در کاروانسرایی گرفتند و به استراحت برداختند. تا روز دیگر چه باشد و چه پیش آید و اینک ادامه ماجرا. شاهزاده ملک جمشید قصه ما بعد از استراحت شبانه در کاروانسرا از خواب بلند شد و سر روی خودش و داد و لباسای گرانبهاش و پوشید و به خودش عطس زد. و به بازار شهر رفت و بگردهش در شهر پرداخت. اما چیز عجیبی دید. اونم این بود که همه اهل شهر از کوچیک و بزرگ لباس سیاه پوشیده بودن. خیلی تعجب کرده بود و موقعی که وقت نهار شده بود به کاروان سرا برگشت و دست پیرمرد کاروان سرادار رو گرفت و به اتاقش برد و اونو نشوند. نهار رو با هم خوردن. و بعد از اون از پیرمرد سوال کرده ای در من تو این شهر غریبم و تازه وارد شهر شدم اما یه سوال دارم و توقع دارم که راستش رو به من بگیم پیرمرد گفت بفرماه بپرس ای جوون و مطمئن باش که به غیراس حقیقت چیزی نمیشنوی شاهزاده گفت میخوام بدونم که چرا همه اهالی این شهر سیاه پوشیدن مگه چه اتفاقی افتاده؟ پیره مرد گفت جبون چندین ساله که در این کوه سرندیب نر دیوی منزل کرده که اسمش برق دیوه. اون هر روز از کوه پایین میومد و مردم این شهر رو می گرفت و میکشت و خونه هاشون خراب میکرد و در هر خونه که پسر یا دختری بود اونو با خودش می برد. تا اینکه اهالی شهر پیش پادشاه رفتند و گفتند پادشاه ها کاری کن و شر این دیو رو از سر ما باز کن. یا هم اجازه بده که ما خونواده هامونو برداریم و از این دیار بریم. پادشاه هم پسر 18 ساله ای داشت در نهایت جوانی و زیبایی و شجاعت. اسمش هم ملک بود. اون دابطلب شد که به جنگ این دیو شیطان سفت بره. سه سال پیش به جنگ دیو رفت اما به دست برق دیو گرفتار شد و اون دیو بدسیرت اونو برد و در قلعه تلسم عاصف انداخت. ملک محمد شاه چندین بار با لشکرش به جنگ دیو رفت تا پسرش رو نجات بده. ولی هر دفعه شکست خورد. و بالاخره هم مجبور شد که با برق دیو قراردادی ببنده که اون دیگه به مردم آزار نرسونه و کسی رو نکشه در عوض روزی یه نفر رو برای غذا براش بفرستن. برق دیو رازی شد و پادشاه هم قرار داد کرد که در میان مردم قرعه کشی کنند و هر روز قرعه به نام هر کی که افتاد اونو برای دیو ببرند. بله جوون سه سال بود که دیو قدم به این شهر نذاشته بود و کسی رو هم نمی‌کشت. و هر روزم می میکردند و به نام هر کی که میافتاد اگه صاحب مال و منال بود که غلام و کنیز میداد و اگر بی چیز و فقیر بود یکی از فرزندانش رو میداد مدتی هم که گذشت برقیه گفت دیگه بوس برای من نفرستی. بنابراین قرار شد که از پادشاه و امیر و همه اهل شهر قرعه به نام هر کسی که افتاد یکی از بستگان خودش رو بده ببرند در دهانه جنگل نزدیک این شهر بزارند و دیو بیاد و ببره. در این مدت هم همینطور رفتار می شد. حالا مدت دو ماهی که بعد دیو از قرار خودش برگشته بیدلیل مردم رو میکشه و ازیت میکنه. مردم شهر اول به خاطر پسر پادشاه که دیو رو تو تلسم آسف انداخته و بعدم به خاطر اینکه فرزنده و کسانشون رو دیو برده همگی از آدار و سیاه بوشن. شاخصاد ملک جمشید که این حرفا رو شنید خیلی متعجب شد و با خودش گفت واقعا هر کسی به اندازه خودش گرفتاری داره. معلومه که هرچه هست از این فلک شعبت بازه. و از پیرمرد پرسید چطور در این ولایت کسی پیدا نشده کار دیو رو یکسره کنه و شرش رو از سر مردم دور کنه پیرمرد گریه افتاد و گفت هرکی که داوطلب میشه و به جنگ دیو میره به دست این دیو بدصیرت کشته میشه من خودم دو تا پیسر نوجوون داشتم. در این مدت دو بار قرعه به نام من افتاد و هر دو پسرم به دست دیو کشته شدند و من شب و روز در فراغ اونها گریه کردم تا پیر شدم. و نمیدونم حالا اگه این دفعه قرعه به نام من بیفته چی کار کنم که حتما خودم رو دیو میبره و میکشه. شاختاد خیلی دلش به حال پیر سوخت و گفه پیر مرز. گریه یه نکن خدا کرینه انشالله که یه نفر پیدا میشه و این دیو رو نابود میکنه و شرش رو از سر همه رفت میکنه ال قصه شاهزاده اون روز و اون شب رو در فکر و خیال بود که چه خواهد شد بالاخره چی به سرش میاد و چطور میتونه این دیو رو از بین برداره یار وفادارش رو چطور میتونه از این تلسم نجات بده آیا زنده میمونه یا در غربت در جنگ با این دیو جونش رو از دست میده؟ روز دیگه صبح علت طول و دید که همه ی تاجرا هر کدوم سر بارهای خودشون باز میکنند و چیزای ای برمیدارند و توی سینی ها میذارند. پرسید داریم چی کار میکنین؟ این کارا برای چیه؟ گفتن میخواییم به بارگاه شاه بریم و اجازه بگیریم که مدتی در این ولایت بیمونیم و کاسبی کنیم. این هدیه‌ها رو هم برای شاه میبریم تا از حمایت پادشاه برخوردار باشیم و کسی ما رو اذیت نکنه. شاهزاده گفت من رو هم با خودتون میبرید. دوست دارم که به خدمت پادشاه شهر برسم. گفتن باشه بیا عیبی نداره. شاهزاده هم یه جفت بازوبند الماس رو که در بازو داشت در آورد و توی یه سینی کوچیک گذاشت و به عنوان هدیه برای پادشاه آماده کرد. و بعد هم همراه تاجه را حرکت کردند و رفتند که به خدمت پادشاه برسند. ولی در راه هر کس از مردم شهر اونو میدید محف جمال و جوان و رفتارش میشد. و اهل شهر با همدیگه دیگه می این جوان سر و کدام چمنه و چه است؟ و همینطور به دنبالش راه افتادند تا به در بارگاه رسیدند و ایستادند. تاجرها داخل بارگاه شدند و در برابر شاه تعظیم کردند و اونو دعا و سنا گفتند و هر کدوم هم پیشکشی خودش رو تقدیم کرد. ملک بهمن شاه پرسید شما چه کاره هستین؟ اونا هم گفتن ما تاجریم. دیروز وارد این شهر شدیم و میخواییم چند روزی در این ولایت بمونیم. پادشاه گفتن سوده باشین هر چقدر میخوایین تو این شهر میتونید بمونید که در امان هستید. و کسی بهتون کاری نداره بعد هم فرمان داد که صندلی گذاشتن دو تاجران نشستن که ناگهان از در بارگاه ملک جمشید داخل شد و در برابر شاه ایستاد و تحضیم کرد و لب دعا و سنای پادشاه باز کرد و گفت عمر و دولت پادشاه رو خلاق عالم زیاد کنه و چنان صناعی پادشاه رو به جا آورد که صدای آفرین از همه طرف بلند شد. مرش بحمن شاه نگاه کرد و دید به به عجب جوونی که در زیبایی و فساحت و بلاغت نظیر نداره. مهر و محبت شاهزاده به دل پادشاه نشست و فرمان داد برای اونم صندلی بیارن تا بشینه. شانده هم جلو رفت و هدیه خودش و جلوی پادشاه گذاشت. پادشاه چشمش به یک جفت بازوبند الماس افتاد که بارگاه رو منور کرده بود و به نظرش اومد که قیمت بسیار بالایی داره. چشم پادشاه خیره شد و از وزیر پرسید این جوان رو می شناسی؟ وزیر گفت نه تا به حالا ندیدمش انگار تازه وارد این ولایت شده. پادشان از تاجرا هم پرسید این جوان کیه؟ چه است؟ تاجرا هم گفتن ما همونو نیمی از کنار دریا با ما رفیق شد و در کشتی همراه ما بود تا داخل این شهر شدیم و در کاروانسرای خونه گرفتیم. شب و روز هم پیش مایه ولی نمیدونیم دونیم است. و مرحمت بسیار بزرگی هم به ما کرده که تا زنده هستیم دست ازش بر نمیداریم و غلام اون خواهنیم بود. پادشاه گفت مگه چیکار کرده؟ اونا هم گفتند در میان دریا نهنگی پیدا شد و سر راه کشتی ما رو گرفته بود و نزدیک بود که کشتی و همه ما رو غرق کنه. این جوان تیری بر چلهی کمانش گذاشت و درست زد وسط پیشونی نهنگ همچین که از پشت سر نهنگ خارج شد و اونو کشت و بعدم معلوم شد که دیوی بوده و میخواسته که همه ما رو نابود کنه. از اون روز هم تا حالا ما حلقه غلامی اونو بر دوش کشیدیم. پادشاه که این حرفا رو شنید از شاهزاده پرسید: جوون راستش رو به کاره کاری اسمت چیه؟ اهل کدوم ولایت هستی؟" شاهزاده گفت: قربونتون بشم، تاجر زاده هستم. اسمم حاجی سعید پسر حاجی مسعوده. از مردم شهر زیرباد هستم." بعد از پدرم تصمیم به تجارت گرفتم و به همین خاطر از ولایت خودم خارج شدم اما در بین راه شب دزدان ریختند و مال و اموالم را بردند منم فرار کردم و کنار دریا به این تاجر رسیدم پادشاه قاه قاه خندی و گوهی جوون تو که راستشون نگفتی حالا میخوای من بگم تو چه کسی هستی و چه کاری شاهزاده گفت بفرمایید پادشاه گفت ای تو پادشاه زاده زیربادی هستی و اسمت هم ملک جمشیده و تلسم هممام بلود سلیمان رو شکستی، افغان دیو رو کشتی و به دنبال یارت ماه عالمگیر دختر ملک نعمان شاه اومده ای که اونو از تلسم عاصف نجات بدی. در بین راه رع دیو رو هم که شبیه نهنگ شده بوده و سر راه تو رو گرفته بوده کشتی و با این تاجرها به این ولایت اومدی که تلسم آسف رو بشکنی شاخصاده که این حرفا رو شنید خیلی تعجب کرد و از جا بلند شد در برابر شاه تعظیم کرد و گفت قربانتان گردم هرچه فرمودید درسته ولی میخوام بدونم من که تا به حال به اینجا نیومدم. شما هم که منو تا کنون ندیدید از کجا منو شناختید و شرح حال منو دونستید گفت ای فرزند بدون که در دامان این کوه دیوی خونه داره اسمش برق دیوه برادر افغان دیو و رد دیو که هر دو به دست تو کشته شدند سه ساله که ملک دارا پسر نوجوان من رو هم برده به تلسم آصف و چون دائم مردم شهر رو عذیت و آزار میداد و میکشت من باهش قرارداد کردم روزی یه نفر رو بهش بدم ببرن بیرون شهر و در دهونه جنگل بزارند و اونم بیاد اونو ببره به جاش دیگه مردم آزار نده تا دو ماه قبلم همین طور بود و هر روز قره میکردند. دو بینام و هر کی که میافتاد اونو می بردن. اونم دیگه به بقیه کار نداشت اما از دو ماه پیش به این طرف یهو ها و آزارش دوباره زیاد شد. من هم با امیران سوار اسبامون شدیم و رفتیم دهنه ی جنگل. اونم اومد و گفتم تو با من عهد کردی یا قرار گذاشتی که مردم عذیت و آزار نکنی. ما که به عهد خودمون وفا کردیم و روز یه نفر به تو دادیم. تو چرا عهدتو شکستی؟ بردیر هم گفت ملک جمشید پادشاهزاده ی ولایت زیرباد قدم در تلسم حمام بلور سلیمان گذاشته. تلسمو شکسته. افغاندیو برادر کوچیک منو هم کشته. اسباب تلسمم برده با و من عوض خونه برادرم افغاندیو مردمو میکشم. منو امیران التماس کردیم که برادرتو رو در تلسم حمام بلور کشتن. تو چرا مردم این ولایت رو میکشی و ازیت میکنی؟ الگسه به هزار زحمت اونو راضی کردیم که مردم رو نکشه. و باز همون روزی نفر رو بگیره و ببره و بعد هم عهد بستیم و برگشتیم تا همین چند روز قبل از این بازم خبر آوردن که دیو دوباره در شهر اومده و فریاد میزنه و مردم رو میکشه و نزدیکه که شهر رو خراب کنه بلند شدیم دوباره رفتیم دهنه جنگل و دیوه اومد گفتم باز چی شده که مردم رو عذیت میکنی؟ بردیو هم گفت همون ملک جمشید که برادرم افغان دیو رو کشته بود و به طرف تلسم آسف اومده در میان دریا رد دیو برادر دیگه منو که شبیه نهنگ شده بوده و جلوی کشتی رو گرفته بوده تا تلافی خون افغان دیو رو بگیره کشته و به شهر سرندیب میاد که بره و تلسم آسف و ماه آلمگیر رو نجات بده اگر چنانچه با من عهد کنین که ملک جمشید رو بگیرین و دست بسته به من تحویل بدین تا عوض خون برادران اونو بکشم منم عهد میکنم که دیگه مردم این شهر رو عذیت نکنم. روزی یه نفر رو هم دیگه ازتون نمیگیرم و تا زنده هستم اطراف این شهرم نمیام. و اگه چنانچه مرگ جمشید بیاد و اونو به من تحویل ندین در این شهر یه نفرم زنده نمیذارم و تو رو و همه امیرانت رو هم میکشم و شهر سرندیب رو خراب میکنم منم در جوابش گفتم اگه اون اومد من اونو میگیرم و دست سه تحویلت میدم قبول کرد و رفت و من از اون روز تا به الان در جستجوی تو بودم. به دروازه بانای شهر سپرده بودم که هر وقت وارد شهر شدی منو خبر کنم تا امروز که رو تو رو دیدم و شناختم. شاهزاده گفت در شهر سرندیب کسی نبود این دیو رو از بین برداره و پسرت رو هم از تلسم آسف نجات بده؟ مگه تو ولایتتون مرد شجا ندارین شما؟ پادشاه گفت ای جبون ما مردای شجاع زیاد داریم ولی مرد میدون برق دیو نیستن چون اون خیلی شجاعه. من چندبار بار لشگر کشی کردم باهاش جنگیدم ولی هر دفعه شکست خوردم و اگه ممکن بود که تا حالا اونو از بین برده بودیم. شاه گفه ای پادشاه حالا چی نظر دارین هر نظری که دارین من حرفی ندارم اگه صلاح میدونید دست و پامو ببندید و به برق دیو بدین شاید شما و مردم و این شهر راحت بشید و ملک داراب هم نجات پیدا کنه پادشاه خندید و گفت ای فرزند اگرچه که من با دیو عهد بستم که تو رو دست بسته بهش بدم تا بکشه و اونم عهد کرده که پسرم رو از تلسم نجات بده و دیگه مردم رو عذیت نکنه ولی حالا که تو رو با این جمال و با این جوونی و با این فضل و کمالات دیدم از هزار جوان مثل ملک دارا چشم بوشی میکنم از پادشاهی من میگذرم ولی از تو نمیگذرم که مبادایی موثرت کم بشه تازه مطمئنم اگه تو رو هم بهش بدم اون به عهدش وقا کنه و پسر منو نجات نمیده دست دستر مردم این شهر برنمی داره. حالا ای جوون اگر چنانچه تو پسر من بشی من تو رو جانشین خودم میکنم شاهزاده گفت گربونتون بشم من اینجا اومدم که به طلسم آسف برم و ماه عالمگیر رو نجات بدم حالا با وجود برق دیو چطور میشه که من جانشین تو بشم تا این دیو بدسیرت کشته نشه نه تو میتونی پادشاهی کنی نه من میتونم جانشینی کنم و نه مردم این شهر آسوده خواهند بود مگه اینکه انشاالله این, این دیو بدسیرت رو بکشم و عالمی رو از شرش خلاص کنم ملک بهمنشاه آهی کشید و گفت ای فرزند اگر رستم دستان هم از قبر بیرون بیاد نمیتونه این دیو رو بکشه چون که خیلی قویه همچنین مادری داره به نام سوسن جادو. اون جادوگریه که جادوگران هفت قله قاف شاگردشن. بدنش هم تلسم بنده و هیچ سلاحی بهش اثر نمیکنه. برادر دیگه هم داره به نام دیو که باز اون از همه برادرها قوی تره و برق دیو مثل سگ ازش میترسه. تمام نر دیوان قاف هم از این می ترسن. حالا چطور میشه با این مشکلات راهی پیدا کرد؟ شاهزاده پرسید اکواندیف کجا هست؟ پادشاه گفت اکواندیف پاسبان تلسم آصفه ولی مادرش رو نمیدونم کجاست. ای فرزند بیا و از این خیالات دست بردار و دونسته خودتو به کشتن نده و همونطور که من از ملک داراب گذشتم تو هم از ماه عالمگیر بگذر. جوونی مثل تو حیفه که به دست دیو و جادو از بین بره شاهزاده گفت به هر جهت باید فکری به حال برق دیو کرد وگرنه که مردم رو میکشه و اهل این شهر از اینجا میرن پادشاه گفت آخی چطور این کارو بکنیم شاهزاده گفت یه نفر رو بفرستین بره بهش بگه که ملک جمشید رو گرفتین و دست بسته اون رو میخوایم که فردا به وقت چاشت بیاریم دهنه جنگل تو هم بیا اونجا و تحویلش بگیر فردا صبح هم جارچی در کوچه و بازار جار بزنه و اهل شهر همه خبردار باشن که به تماشا بیان و شما هم با امیران منو ببرید در دهنه جنگل تا اون بیاد اگه خدا بخواد که اونو پهلوی دو برادرش می اگه خدا هم نخواست اون منو کشت که خب بالاخره برای مدتی شما و اهل این شهر راحت خواهید بود. پادشاه گفت: ای فرزن من همچین کاری نمی کنم به خاطر اینکه جواب پدرت و جواب ملک نومان رو چی بگم؟ تازه مردم برای این کار منو سرزنش خواهند کرد چرا که این کار از جوانمردی بدوره؟ شهزاده گفت قسم میخورم که راه دیگه ای نیست و اگه این هم نکنید خودم با پای خودم پیش اون میرم. هرچی خدا بخواد همون میشه و اگه از پدرم میترسید من نوشته میدم که اگر کشته شدم کسی مطالبه ی خون من رو نکنه. القصه هرچه که ملک مهمن شاخ و امیرانش اونو نصیحت کردند و گفتن کشته میشی شهزاده قبول نکرد. پادشاه هم که دید چاره ای نداره به وزیرش گفت بلند شو برو و برق دیو رو خبر کن و برگرد وزیر هم رفت در دهنه جنگل ایستاد و علامتی رو تکون داد و برق دیو هم از روی قله اونو دید و به سرعت اومد و گفت ای وزیر چی میخوای بگی که منو صدا کردی وزیر هم گفت ای پاهلوون از طرف پادشاه مژده برات آوردم دیو گفت چه ای؟ وزیر گفت ای پحلبون بدون و آگاه باش که دیروز ملک جمشید پادشاهزاده ی زیرباد که برادر تو رو کشته وارد این شهر شده و ملک بهمنشاه هم خبردار شده و امروز اون رو به بارگاه خاست و فرمان داد دست و پاشو بستند و زندانی کردن. من رو هم فرستاد که بیام تو رو خبر کنم که فردا به وقت چاش بیای اینجا و اهل شهر هم به جهت تماشا بیان و پادشاه ملک جمشید رو بیاره اینجا و در برابر همه مردم اونو به تو تحویل بده که خاشا نکنی و بر عهد خودت پایدار باشی. دیفت که این حرفا رو شنید فریادی از خوشحالی کشید و گفه وزیر به پادشاه بگو که به روح ناپاک ابلیس قسم دیگه به تو و اهالی این شهر کاری ندارم و کسی رو نمی کشم و تا زنده هستم به دولتت خدمت می کنم و سر هر کیم رو بخوای برات میارم وزیر برگشت و حکایت رو برای پادشاه گفت. پادشاه از جای خودش بلند شد و دست شاهزاده را گرفت و با وزیران و امیران به خلوتخانه رفتند و فرمان داد که برای اون شب مجلس میهمانی برپا کنند و شاهزاده هم سرگذشت خودش را از ابتدا تا به همون جایی که بود تعریف کرد پادشاه و امیران افسوس می‌خوردند که این جوان جا چه ها کشیده و سرزنشش می‌کردند که این ولاها را دونسته به سر خودت آوردی و هنوزم خسته نشد یا میخوای که با برق دیو بجنگی شاهزاده گفت مرد آن است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد و هرچه چه پیش دوستان این هم پایان قسمت ششم و اما منتظر قسمت‌های جذاب بعدی باشید که هنوز ماجراهای ناگفته‌ی زیادی داریم امید که از این داستان لذت و بهره کافی برده باشید در پناه نور و عشق الهی باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را سفر کنیم؟ جایی که پری و کتوله ها زندگی میکنن؟ کانال هزار افسان همونیه که دنبالش جایی که داستان های ای و استورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا. سفری